دخترک بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. البته خیلی هم بازیگوش بود و مادرش زیاد اذیت میکرد. یه روز ملکه حالش خوب نبود و سرش درد میکرد. به اتاقش رفت تا کمی استراحت کنه. دختر بازیگوش نیز به دنبالش رفت و اونقدر سر و صدا کرد که ملکه از شدت ناراحتی از جاش بلند شد و به طرف پنجره رفت و اونو باز کرد. یه دفعه چشمش به چند کلاغ افتاد که اطراف قصر پرواز می کردن. بی اختیار گفت ای کاش تو هم کلاغ می و از این اتاق میرفتی بیرون تا من کمی استراحت داشته باشم. یه دفعه دخترک به شکل کلاغ در اومد و پرواز کنان از اتاق بیرون رفت و در میان درختان انبوه جنگل کنار قصر ناپدید شد. سالیان سال از این ماجرا گذشت و از دخترک خبری نشد. روزی مسافری از جنگل میگذشت که دفعه صدای نالی کلاغی رو شنید. انگار کلاغ گریه می کرد. مسافر صدای ناله رو دنبال کرد تا به کلاغ سیاهی رسید که روی شاخه شاخی بلود نشسته بود. همین که مرد به درخت نزدیک شد کلاغ به او گفت من کلاغ نیستم. من دختر پادشاهی هستم که افسون شدم. اما تو میتونی منو آزاد کنی؟ مرد پرسید چطوری؟ طلاق پاسخ داد. باید همینطور براهت ادامه بدی تا وسط جنگل برسی. در اونجا کلبه ای خواهی دید که یه پیرزن جلوی اون نشسته. پیرزن به تو غذا و نوشیدنی تعارف خواهد کرد. اما تو نباد هیچ کدوم رو قبول کنی. چون اگه حتی مقداری کمی هم از اونا بخوری به خواب عمیقی فرو میری و دیگه نمیتونی من رو بدی. بعد ادامه داد. در پشت کلبه باقیه که در میان اون توده بزرگی از کاه قرار داره. تو باید روی اون بری و منتظر بمونی تا من به شکل واقعی خودم از اونجا عبور کنم. من سه شب پشت سر هم سر ساعت دو سوار بر یک کالسک از اونجا خواهم گذشت. روز اول چهار اسب سفید کالسکه رو خواهد کشید. روز دوم چهار اسب سرخ رنگ و روز سومم چهار اسب سیاه. اگه موقعی که کالسکه از اونجا میگذره تو خواب باشی و نتونی دهانه اصفار رو بگیری من نجات پیدا نخواهم کرد. مرد قبول کرد و قول داد گفتهای اونو به مو انجام بده. اما کلاق گفت آه اما من خوب میدونم که تو به قولت عمل نخواهی کرد. مرد گفت حالا خواهی دید. بعد به طرف کلبه پیرزن به راه افتاد. وقتی به اونجا رسید پیرزنی به پیشوازش اومد و گفت مرد بیچاره چقدر خسته به نظر میرسی؟ بیا بیا تو با این خوراکی های لذیذ و این شربت های خستگی راه رو از تنت بیرون کن. اما مرد گفت خیر من نه چیزی میخورم و نه چیزی مینوشم. پیرزن باز هم اصرار کرد و گفت لاقل کمی از این شربت خونک و دلچسب بنوش. یه لیوان شربت که چیزی نیست آنقدر گفت و گفت تا بالاخره مرد راضی شد و کمی از اون شربت نوشید بعد صبر کرد تا نیمه شب فرار رسید اون وقت به طرف باغ رفت و روی توده کاه اصداد و منتظر موند یه دفعه احساس خستگی شدیدی کرد و چون نمیتونست در برابر اون مقاومت کنه با چشمان باز روی زمین دراز کشید تا از این طریق خستگیش برطرف بشه اما تا دراز کشید پلکاش خود به خود بسته شدن و خورخورش به آسمان بلند شد و به خواب سنگینی فرو رفت ساعت دو نیمه شب که شد دخترک سوار بر کالسکهی که چهار اسب به سفید اونو میکشیدن از راه رسید و مرد مسافر رو که به خواب عمیقی فرو رفته بود دید و بدون اون که چیزی بگه از اونجا رفت شب بعد نزدیک ساعت دوازده پیرزن به باغ اومد و باز برای مسافر غذا و نوشیدنی آورد. اما مرد چیزی نخورد. پیرزن اونقدر اصرار کرد و گفت و گفت تا بالاخره مرد یه لیوان شربت نوشید. نزدیک ساعت دو مرد مسافر از توده کاه بالا رفت. اما مثل دفعه قبل به قدر احساس خستگی کرد که دیگه قادر نبود روی پاش بیسته. پس به ناچار روی زمین دراز کشید و دوباره به خواب عمیقی فرو رفت. شاهزاده خانم این بار باکالسکی که چهار عصب سرفرنگ اونو میکشیدن به اونجا رسید. اما باز هم مرد رو خفته دید و هر چه تلاش کرد نتونست بیدارش کنه. روز بعد پیرزن مرد مسافر رو سرزنش کرد و گفت اینطوری نمیشه. تو اگه چیزی نخوری از گرسنگی نگی میمیری. مرد جواب داد من ابدا قصد ندارم که چیزی بخورم یا بنوشم. با این حال، پیرزن زرفهای غذا را جلوی اون روی زمین چید و خودش از باه خارج شد. مرد هر کاری کرد نتونست در برابر بوی و خوش مقاومت کنه و سرانجام به سراغ غذاها رفت و تا اونجا که میتونست از اونا خود. اون شب هم مثل شبهای قبل از توده کاه بالا رفت و منتظر موند. طولی نکشید. که بیشتر از همیشه احساس خستگی کرد و روی زمین دراز کشید و چنان به خواب عمیقی فرو رفت که انگار چند سالی هست نخوابیده. سر ساعت دو، فالسکه شاهزاده خانم که چهار از بسیار او رو میکشیدن از راه رسید. شاهزاده خانم با چشمانی اشکبار از اون پیاده شد. چون از قبل میدونست که داخل باغچه خواهد دید. مرد مسافر مانند دو شب پیش همچون تکه سنگی روی زمین افتاده بود و خورناس می کشید. دخترک هرچه اونو تکون داد و پریاد کشید، مرد از خواب بیدار نشد. دخترک نمی تونست ناجی خودشو از خواب غفلت بیدار کنه. پس یه نان، یه تکه گوشت و یه قمقم آب کنارش گذاشت که خاصیتی جادویی داشتند و هرچه از اونا میخوردی تموم نمی شدند. و بعد انگشتری تلای خودشو که نامش بر روی اون حق شده بود به دست مسافر کرد. نامهای براش نوشت و به اون گفت که چه چیزایی براش گذاشته و یادآوری کرد به خوبی معلوم بود که تو نمیتونی مرا از اینجا آزاد کنی. اما اگه هنوز علاقه به این کار داری به قصر طلای هرومبرگ بیا. این کار از تو ساخته است. بعد سوار کالسکه شد و به قصر هرومبرگ رفت. وقتی مرد مسافر از خواب بیدار شد، تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده. ناراحت شد و با خودش گفت، من نتونستم نجاتش بدم. یه چیزهایی رو که شاهزاده خانم براش گذاشته بود و دید و نامه رو که کنار اونا قرار داشت برداشت و با عجله خوند. بعد از جهش بلند شد، نان و گوشت و قمقمه آب رو برداشت و آماده حرکت به طرف قصر هیرون شد. اما چون از محل اون قصر کچکترین اطلاعی نداشت، مدت ها همینطور راه رفت و سرزمین های زیادی رو زیر پا گذاشت تا اینکه روزی به جنگل بزرگی رسید که بسیار تاریک و انبوه بود. مرد مدت چهارده روز در این جنگل راه رفت. اما نتونست راه خروج اونو پیدا کنه. اصر روز 15 که فرا رسید زیر درخت بلوطی دراز کشید تا کمی استراحت کنه و به خواب رفت صبح هنوز آفتاب نزده صدای غرش وحشتناکی اونو از خواب پروند. مرد هرسون از جاش پرید و با احتیاط به طرف صدا رفت. رفت و رفت و رفت تا به قصد بسیار بزرگی رسید که غولی جلوی اون نگهبانی میداد. مرد فکر کرد اگه جلو تر برم غول مرا یه لقمه خام خواهد کرد. مدتی این دست و اون دست کرد. اما چون میبایست برای خروج از اون جنگل بی انتها از کسی کمک گرفت، دل به دریا زد و از لای بوته ها بیرون اومد. قول تا اونو دید فریاد زد. آی آدمی زد. بیا که به موقع اومدی. مدت چیزی نخوردم. تو صبحانه خوبی خواهی بود. مرد داد زد. دست نگهدار. من برای هر دوی من به اندازه کافی غذا دارم. قول گفت. راست میگویی؟ حالا که اینطوره من تو رو نمیخورم. خیالت راحت باشد. بعد هر دو با هم پشت میزی نشستند و مرد و مسافر نان و گوشت و خمکمه سهرامیز رو از کل پشتی خود بیرون کشید و جلوی غول گذاشت. غول با خوشحالی گفت به چه چیزی از این بهتر؟ و با ول شروع بخوردن کرد. وقتی هر دو کاملا سیر شدن مسافر از غور پرسید میدونی قصر هورنبرد در کجا قرار دارد و از کدام طرف باید به اونجا رفت؟ غور گفت من نقشه ای دارم که محل و نام تمامی شهرها و دهکده ها و خونه این اطراف توی اون نوشته شده. باید نگاهی به اون بیاندازم. بعد بلند شد و به اتاق دیگه ای رفت و نقشه رو با خود ورد. اونا شروع به جستجو کردند. اما هرچه نگاه کردن نتونستن قصر مورد نظر رو پیدا کنند. گول گفت، مهم نیست. من نقشه بزرگتری دارم که در طبقه بالا داخل گنج است. الان میرم اون رو میارم. اما در این نقشه نیز چیزی پیدا نشد. مرد مسافر میخواست نامویدانی به سفرش ادامه بده که گول از او خواهش کرد چند روز دیگه در اونجا بمونه تا اینکه برادرش از سفر برگرده. وقتی برادر بزرگتر غول به خونه برگشت، اونا از او پرسیدن که آیا محل قصر طلایی هرومبرد رو میدونه یا نه؟ اما غول بزرگ جواب داد تا زمانی که شکمش رو سیر نکنند، یک کلم هم حرف نخواهد زد. بعد از اون که غذا خورد، هر سه با هم به انبالی رفتند تا نقشه های قدیمی رو زیرورو کنند و هر طور شده نقشه قصر رو بیابند. اما موفقیتی به دست نیوردند. قول بزرگ باز هم رفت و نقشه های دیگه ای آورد. اونا از جستجوی نقشه ها دست بر نداشتند تا اینکه سرانجام پس از ساعتها محل قصر رو در یه نقشه کوچیک قدیمی پیدا کردن. اما از روی نقشه معلوم بود که قصر طلایی دست کم هزار فرسنگ از جنگلی که اونا در این قرار داشتن دورتره. مرد مسافر گفت: حالا من چطوری خودم رو به اونجا برسونم؟ این کار سالها طول میکشه. حول بزرگ گفت من قبل از اینکه برای مهمانی به خانه خالم برم دو ساعت فرصت دارم. در همین مدت تو رو به نزدیکی قصر خواهم رسوند. اما بقیه راه رو باید خودت به تنهایی بری. چون اگه دیر کنم خاله خیلی عصبانه میشه. حول مرد مسافر رو با خود برد و در فاصله چند فرسنگی قصر به زمین گذاشت و خودش فوری برگشت. مرد مسافر شب و روز راه رفت تا اینکه سرانجام از دور چشمش به قصر طلای هرونبرگ افتاد. قصر بر روی قله کوهی بزرگ و بلوری بنا شده بود و مرد از اونجایی که ایستاده بود میتونست شاهزاده خانم رو ببینه که سوار بر کالسکه داره دور قصرش گردش میکنه. اون با دیدن این صحنه خیلی خوشحال شد و شروع به بالا رفتن از کوه کرد. اما هر چند قدم که بر داشت دوباره سر می‌خورد و پایین میافتاد. وقتی دید که به این ترتیب نمیتونه خودشو به شاهزاده خانم برسونه، غمگین و ناامید شد و گفت: من همینجا میمونم و از هدفم دست بر نخواهم کشید. اون وقت در پای کوه بلورین برای خود کُلبه‌ای ساخت و مدت یه سال در اونجا زندگی کرد. اون هر روز از دور شاهزاده خانم رو میدید که در قله کوه گردش میکنه، اما قادر نبود خودشو به اون برسونه. یه روز که اون در کلبش نشسته بود و همینطور غصه میخورد، صدای فریادهای بلندی رو شنید و وقتی از پنجره بیرون رو نگاه کرد، سه راهزن را دید که داشتن همدیگر رو کتک میزدند. مرد مسافر هرچقدر بر سر اونا داد کشید که ساکت شوند، راهزن ها توجهی به اون نکردند. سرانجام از کلب خارج شده از اونا پرسید که دوایشان بر سر چیست. راهزن اولی گفت من یه اصا دزدیدام که اون رو به هر دری بزنم باز میشه دومی گفت من شنلی دزیدم که هرکس اونو بپوشه ناپدید میشه سومی گفت من اسبی دزیدم که میتونه از کوه بلورین بالا بره مرد گفت حالا بگویید دوایتان بر سر چیست راهزن اول گفت دوای ما بر سر اینه که نمیدونی باید بازم با هم باشیم یا اینکه از هم جدا بشیم و هر کدوممون به دنبال کار خودمون بره مسافر اونا گفت من اگه مطمئن باشم که شما راست میدوید حتما مشکلتون رو حل میکنم. راهزن گفتند: اینکه این که کاری نداره بیا سوار شو شنل رو روی دوشت بنداز و اثار رو دست بگیر و امتحان کن. مرد گفت باشه. آن وقت سوار اسب شد و اثار رو برداشت و شنل رو روی دوشش شنداخت و نامری شد. حالا دیگه راهزنا ها نمیتونستن اونو ببینند. مرد با احسا جانشان افتاد و تا میخوردن کتکشان زد. بعد به تاخت از کوه بلورین بالا رفت و خودشو به دروازه قصر رسوند. اما دروازه بسته بود. با احسا ضربه آرامی به دروازه زد. دروازه فوراً باز شد و او وارد قصر شد. بعد از پلکان قصر بالا رفت و خودشو به اتاق شاهزاده خانم رسوند. شاهزاده خانم در درگوشه نشسته بود و اشک میریخت. قطرات اشک داخل جام بلورین می‌غلتیدند. او نمیتونست مرد مسافر رو ببینه. انگشتری رو که شاهزاده خانم بون داده بود از دستش درورد و او رو داخل جام بلورین انداخت. بعد به سرعت از قصر بیرون رفت. شاهزاده خانم از صدای افتادن حلقه طلا در داخل جام از جا پرید و با صدای بلند گفت: این حلقه مال منه. ناجی من اینجاست. و تمام قصر رو به دنبال یافتن مرد جستجو کرد اما نتونست اونو پیدا کنه ولی همین که از دروازه قصر خارج شد چشمش به مرد مسافر افتاد که کنار اسب سفیدی ایستاده بود و عصایی به دست داشت مرد مسافر شنل رو اصلا درآورده بود و به همین خاطر شاهزاده خانم تونست اونو ببینه شاهزاده خانم شادمانه جلو دوید و با خوشحالی به اون گفت حالا که موفق شدی و با کشش تلاش خودت من رو از بند تلسم آزاد کردی همین فردا با هم عروسی میکنیم تو دیگه پادشاه این سرزمین هستی و دست اونو گرفت و با هم به قصر برگشتند و جشن گرفتند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی